341 رساله بسم الله الحمد لله والسلام على قبول بعضی از کبه هاست و قبول سر بومیده که اصلا جایز نیست ما هایی که قاعده به عدم جواز ایتیات هم خودشون دو فرقند قاعده به عدم جواز ایتیات هم مطلقا قاعده به عدم جواز ایتیات در موارد از دو طریق اشتهاد و تبلید و مرمون میرزای قومی ظاهرش اینه که خایل به بطلان عمد محتاطه که تارک دو طریق اشتهاد و تبلیده شبینظریه نظریه محقق نائینی قائل به اینکه احتیاط برای شخص متمکن از تقلید جائز نیست ولی حالا علىالقاعده قابل آیا احتیاط جائز مطلقا یا جائز نیست مطلقا یا جائز فی الجمله اختلافش برگشته به <تصفح> بعدی از عدلل است در که در نسبت به منع احتیاط که میگن مخلیده به قصد بچه و هر چیزی که مخلیده به قصد بچه باشه در مقام تبدیل یا جایز نیست و احتیاط هم اینطوریه یعنی اگر کسی باشه احتیاط بکنه اخلال به قصد بچه در چه در مواردی که, مواردی که مستلزم تکرار یک عمله و چه در مواردی که بین اول بکسری باشه که ما بخواییم بکسر به اتیان و امده تا این دلیلشون فقطان بسته و, و تمیز که به میزای بومی هم همین نسبت داده شده که دلیل من از اتیازشون همین. بست بوجه <تصفيق> اونتا بحث اساسی تر از اینه و ملخص کلام اینه که تنها ترید کشف احکام شریع کتاب و سنته و در دابطه با کتاب و سنت اون چیزی که خونجیت داره قطعو زنون خاص است و دلیلی بر حجیت مطلق زنون چه دلیل بر انصداد چه بنابر دلیل انصداد و چه بنابر غیر دلیل انصداد از هیچ راهی نمیشه مطلق زنون رو هجت بدی بسانهایی که قایل به انصدادند مثل میزای چه انصداد مطلب که ایشون قایل و چه انصداد فی الجمله که مشهور معاصرین قال نسبت به علم اینها این خودشون قایل به اینکه تنها راه رسیدن به حکام کتاب وسنت و وجیت ظهورات اینها غیر قابل ماز بنابراین انصداد واقعیت نداره منو از نظر دحسی و مبنایی به قاعده موضوع هم بر این که حکمت <تصفح> یعنی که به انصداد علم یا انصداد مطلق علمی و علم باشیم و به یه منصد ما به احکام راهی نداریم و دست بسی با این که عمدترین که در مقام تعبدیات بر ما همین روایات، و عهدی از خوبه ما با بزنیدین خایل بردم وجیت و لباییات نیستن لذاب و التظام به تقسیم احکام و احکام ظاهریه و احکام مابعیه که برای همه این مکندبین احکام ظاهریه ظابطه و مراد از حکم ظاهری عمل محتضای اصول عملیه و محتضای امارات و عدله لذا اون چیزی که تنجز پیدا میکنه بر مکندفین همین احکام ظاهریه است و ما به غیر اینها تکلیفی نداریم و تمام شدیعتمون حصل میشه در همین احکام ظاهریه که متمثل در وزاید شیعه و زواهر قرآنه لذا این صداد واقعی نداره ولو بعضی ها بایند این نظریه در تعبودیات که هم است از عبادات خاصه و بعضی از عقود و ایقاد که مجبور و مجموع به همه اینها گفته میشه که به این تفسیر شامل طلاق و نکاح و وقت اینها میشه که سیاب خاصی برای انجایش در مقام خارج وارد شده تأخدیات به این معنا منحصر به یک طریق شرعی و این رو هیچ کدام از بابه ها انکار نمی کنند. وقتی تأخدیات منحصر به طریق شرعی باشه احتیاطی که یک طریق دقریه مفوضه لذا تنبیت میشه نظریه یه میزای قومی برای اینکه احتیاط جایز نیست قول به جواز احتیاط یعنی تعدی در باب تحفیدیات و این هیچ کدام از توقه ها جایز نمیدون و اینکه میگن اله احتیاط حسنون الان بله حال این در غیر موارد تحفیدیاته فرق خودی یاد باید از طریق کتاب سنت برسه نه از راه دیگه به نحص مجموعه احتیاط نه در عرض و تبدیل و نه در طولش ما راه سومی به نام احتیاط نداری ولیانا مشکور ما هست باید آن این هم که قائلا به احتیاطی که اینطوریه میگن باید در اصل مسئله احتیاط تبدیل کنن و خود سید در قرومه داره که خود جواز احتیاط نیاز به اجتحاد یا تبدیل داره لعندن مسئله تا خلافیه تا مساله خلافیه همه موارد احتیاط باز برمیگرد به تبدیل یا به اشتحاد. از همان اساس قایل بشیم به اینکه احتیاط ندار احتیاط راه نیست و, و در کلمات قدما هم هست قطولان عمل تارک طریقه یه و تبلید یعنی یه چیزهای قدما ها می دونستن که بعدا در کلمات متأخرین و معاصلین مقفولنن واقع شد اونا نافی احتیاط بودن بعد این که قائل شدن به محضورات احتیاط کردند کردن بخاطر بسته وجه بعد قصد وجه رو تفسیر کردن به اینکه ما نمیدونیم این اولی عوادت یا دومی عوادت و امثال اینا این خیلی این تفسیر تنظر پیدا کرد به زا معاصلین اومدن انتار کردن اعتبار بست وجه با انکار اعتبار رست وست ثابت میشه احتیاط احتیاط پس جایز ولی مسئله امیختر از اینه امیختر از اینه که فیلن و قدما منتفه همین معنا بودن قدما قاعد بودن که در تعبدیات تنها راه سبوتش طریق شرقی همون حرفی که همین از هم میگفت یعنی هم دائره بین خودجییت زنون خاصه و عدم خودجییت مطلق زنون با جریان میزاب مازن پیدا کنیم خودجیت داره دیگه امامتی خلافت رسالتی همش میره کنار دیگه تأخد نیست تو نافی تأخد احتیاط نافی تأخد خودم ها به این نیستند ازا قایل به انفتا باب علم و علمی هم. ولی بعدا قایل به انصداد شدن و انصداد تو دو فرقه پیدا کرد برای خودش فعلا هم که جمعه قایل به انصدادم. ولی اینطوری نیست اونها کلماتشون دقیق چه در کلمات شیخ مفید و چه در کلمات معاصرینش و حتی در کتاب های کلام می شون به این باب علم و علمی هند. یعنی بین این جنسان از امام علیه السلام بپرسه یا از عبان ابن بپرسید، بپرسه هیچ فرقی نیست وظیفه همون وظیفه است که روایتش هم نجاشی در صفحه ده آورده ولدن و السلام یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افتنس این نیوهب و امیرا فیشی عطی مسلود تنابراین فرقی از چیز عبان بپرسی از عمان بپرسی یا در وسایل شیعه جلده صفحه سد و باب 11 و صفحات دیگه داره که اینه آقا این پچه را احکام رو تفصیل میکنم به دو قسم احکام ظاهریه و واقعیه ظاهری هم دوتا تفسیر بلاشه ظاهریه یعنی اصول عملیه یا همه یماره در اصول پس هم خوندیم دیگه ما با کذف به احکام ظاهریه این احکام واقعیه لوح محفوظ هم سال این ها ای چیز خیال کردیم در لوح محفوظ هست اون خطمیت قیامت معلوم میشه که نماز واجب بودی یا حرام بودی یا مستحب بوده اینطوری نیست اینا تخیل هم. ما مکلف به همین روایاتی غیر اینم نداریم شریعت هم همینه یعنی ما خیال کنیم که غیر از وساید شیعه یک لوح محفوظی هست که در اون فرق هست با این. نه اینطوری نیست خیلی از روایات هم معیده یا در کمال و دین صدوق و ام ملحبات سلواغه فرض اوفیه ها اداروات حدیث نام برخیل از روایات دیگه که مشکل سنبی هم ندارم معتبر حساب میشن ولو صحیح نباشه خوبه دیگه مثلا از نیست خوبه, خوبه نیست منه هستان مجبور این استیهاش نکنیم احتیاط حتماً واید باشه میرزای قومی میگه نباید باشه واقعیت با هم همینه احتیاط نداریم الان چرا بعضی از های دینی درست شده میگن تقرید بشه معناست ولی آره چه تقرید کنیم بخواد همین نظریاته بخواد این که احتیاطی درست شد میگن نافی اجتهاد و تبلید. پس در کلمات قدما که قائلین به فتا هم دو راه بیشتر نداره. یکی اشتهاده یکی تقلیده به خاطر این دو راه مستند به زنون خاصه معتبره هست ولی احتیاط مستند به زن مطلب غیر معتبره پریدن کلاب و جریان میزا اینها دلیل نمیشه به هر خوابی ما بیایم فتحا بدیم بنابراین احکام شهر از طریق در خودش که کتاب و سنته باید واصل بشه شخص یا باید مستهید باشه یا تقلید کن پس احتیاط چی میشه؟ احتیاط نداریم احتیاط امر ابلیه امر ابلائیه هیچ ارتباطی به احکام شهر و اف یاد نداره حالا مشهور چی میگن؟ مشکول هم این همینو میگن شاهدش هم مطلب سید یزدی در اوره که فرموده در اصل مسئله جواز احتیاط لابد من اجتهاد اب تقلید لان المساله خلافیه. پس صاحب سوم اینونه در اصل جواز احتیاط هم باید برگردیم، همان که در کیفیت احتیاط هم برمیگردند. لذا اینطوری نیست که بیایم بگیم به یک طرف نماز بخونیم یا به دو طرف دو طرف بخونیم بهتره تحبت کدوم بشه تعبد به زنون خواست اثبات میشه زیاد خوندن رو تحبت نمیگن بلکه نافی تحبت ام لایره بینی که هم نماز رو با سوره بخونیم یا بدون سوره با سوره خوندن رو تعبد نمیگن بیشتر خوندن که ملاک نیست ملاک تحبته یعنی از مجرای کتاب و سنت باشه غیر این باشه که طریق عقلی و احتیاطه اون رو تا یاد نمید. شما حالا که مثالایی که میزنید که که هر که توشید مثلا که که همیتر باشه که یقین حاصل که انجام داده این باه، گرامریا مشکل نداره، که مثلاً من یه جوری عمل بکنم، به علاوه اون و بندگی این داره داره نافیه نافیه تعبوده. نافیه تعبوده. به این, به خاطر این آن... که دارم میگم، به خاطر این مطلب که بگم خیلی برای دو تا تفسیرا. دو تا تفسیر, تفسیر برای تعبدیات هست. یک تفسیر مال مشغوله. و یک تفسیر تفسیری که ما قبلن گفتیم و دقیق از تفسیر مشهور تفسیر مشهور از یاد و از عبادات و امثال اینها در همین تربیاتی دارم میگم آقاییم بنویسن بعد رو همین بحث کنیم که در زن همی دوتا جمله است تفسیر مشهور اینه که عبادت و تعبودیات امثال اینه اولا عبادت رو با تعبودیات یکی می کنن با اینکه نیست عبادات یعنی نماز تعبدیات یعنی حتی طنا تعبود قیل از عبادت بحث ما تعبدیات نه عبادات خاصه تفسیر تعبدیات در مسلک مشهور این بیانه که در خیلی از کلمات کلمات اومده کل ما یونسبو الالمول هر چیزی که منصوب بشه به مولا هر کاری رو شما به خاطر مولا انجام بدی مولا میگه عبادت و عبادت این تفسیر مشهوره اذا احتیاط هم از این موارد میشه من چرا چهار تا نماز میخونم به خاطر خدا داری میخونم اذا تعبده به عبادت حساب میشه قلنا ما و عدن مولا این تفسیر مشهوره ولی تفسیر دقیق تر برای تعبود کل ماه و منصوب نلن مولا نه یون سوای نلن مولا. هر چیزی که منصوب باشه به مولا. و معیلش هم روایاتی که در اصول کاف اومن. که هر چیزی استنادش ثابت شده باشه به مولا اونو میگن تعبود و عبادت نه هر چیزی ما نسبت بدیم و میشه میشه بدعت رو هم نسبت بریم به خود به خاطر خدا انجام ده. پس فرق از دو دوتا تعبیر کل ما یونسب و الال مولا و کل ما هوه منسوب ال مولا منصوب باید باشه یا یونسب باشه دقیق ترینش یعنی محسن خیلی از روایات دومیه در یون سب یون سب چرا درست نیست حتی از نظر ادبی هم همینطوره از نظر ادبی هم یون سب که به صورت مزار میاد مجموع میاد در مقام توسعه است. توسعه برخلاف خلاف در تعبد تعبد همیشه متزمن تقییده یعنی باید تزییرشانه نه توسعه بده اگه یه اون سبب بیاد میده ولی اگر به صورت مقبول در بیاد تقیید و تزهیه لذا اختلاف اعلام در اینه که ما تعبدیات رو به قصد امرش بیاریم یا به احتمال امرش بیاریم همین که احتمال میدیم امری به رسیده باشی احتمال امر بنابر تفسیر اول درسته ولی بنابرای تفسیر دوم بمید. باید عمل یا نهیش واصل با شده باشه لذا شما تأبدیات رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا تفسیر مشهور رو قبول میکنید؟ خب طبق مشهور قائل به جواز احتیاط بشید اگر تأبدیات رو طبق تفسیر دوم میپذیرید احتیاط راه سبوم نیست کما اینکه قدما هم قائل به قطلان عمل محتاط هم, هم احتیاط کن. باید تقلید کنه یا مستهند باشه در تعبدیات راه نداره به در از باید معلوم باشه زبت تو دخیله یا مدتر تو دخیله یا انگه تو این باید بدونید بعد بقیه رو به نظر محقق ناینی نا احتیاطا میارند نه اینکه ما به همشون منحیصون مجموع هستم بایت معلوم باشه با کدومش ما قصد انشاء کردید مثل انتطالق که یقینا و من این موجه به بینونته بقیه سیقی که میاد اونها یقینا تحییده لذا تفسیر تعبدیات مهمه شما تعبدیات رو به چی تفسیر میکنید؟ کل ما سب و مولا که توصیر پیدا میکنه احتیاطم وارد میشه یا کل ما و منصوبون ادن مولا که یقینا موارد وصول رو میگیره چیزی که واصل شده باشه از طریق کتاب سنت غیر کتاب سنت یعنی مثل احتیاط اقلی طریق حساب نمیشه لذا تعبد به این نیست که چهار تا نماز بخونه تعبد به اینیست که چهر چیزی رسیده به همون نه بخونه اونجا که امکانه مدرسی اصلا در چمان مثلا همون مثلا اگر بگیم من که یا شخص مجتهه مگه میشه نرسم مثلا در طرفی به نه این از نظر سقرانی ممکن نیست. یه شخصی فقیق باشه و ندسیده باشه نگه میشه یاوی یاوی باشه یاوی یه نماز برش باز. لازم. نماز برش باز. روایت هم داد نمیشه احتیاط نیست. احتیاط, احتیاط نافی تأبد نمیشه نمیشه نمیشه نمیه تأبد یعنی چیزی که منصوب واسله اون کیان کن چی واسله؟ زن خاص دیگه تبلید زن خاص تبلید زن خاص. حالا اینا اسمشون میزنن زن و اینه علمه دیگه مجتهید مگه به زنون میتونه عمل بکنه مگه میتونه به زن فتواه بده همش علمه حالا اسمشون و از خود گذاشتن زن ما در زن. زن می نبره. خبر زراره کجاش زمنه نه همه علم دیگه ظواهر قرآن کجاش جزء زنون خاص است انا همش علم دیگه یه چیزهایی در کلمات اومده که <تصح> اینها تخلیه از هان از این مطالب طول میکشه صد سال دویست سال, دوی سال دوی می‌کشه. میکشه زنون خاصه و نمیدونم این نداریم و انسداد و امثال اینها ها اینه چی؟ کجا چیه وقتی فقها در زمان قیبت حکم امام را داره دیگه چه زندی ما بناباشه به ناینی مراجعه نکنیم خودمون احتیاط کنیم این دیگه به هم بر میشه اتفاقا امامت مهمترین چیزه دین ما یه هدفی داره و یه احکامی داره اهدافش بالاتر از احکامش احکام دین همیشه اینه که اجتماع دور یک نفر حل بزنه نماز جماعتم برای همینه تبلیدم برای همینه و خیلی از امور برای همینه امامت خیلی مهمه مرحوم ملکی تبویزی در مراقباتش داره دو چیز رو اهل علم فراموش نکنن یکی موعظه هر جا رسیدی موعظه کن هر چی به ادنا مناسبتی موعظه کن فامیل باشه یا غیر فامیل باشه مولود خونه یک از یکی از فامیلا ها رفته بودم لباس یکی از نامناسب بود گفتم خیلی هم در این لباس لباس مسلمون نیست نه اگه بگین ناراحت میشن به درک به درک یکی موعظه و یکی امامت. طلبه به دنبال دنبالیم باش به امامت برسه در آیه قرآن هم داره که ما رو امام مقتلیم قرآن بده خیلی مهمه ما در ساید مکازم نکنیم برای چی؟ برای شرمه نموداری؟ یا طلبه ی بشه مثل شیستت مثل امام مثل مرمای خویی امامت سعامت خیلی مهم نحوه درست کندن و فرد تبریزی تاری و محسوم یکی موعظه یکی امامت خیلی مهم اعمالتون رفتارتون و کردارتون همه چی. وقتی بنای شریعت برای امامتی باشه ما تقلید رو بگیریم مردم دو بالی چی برن گروفایی الان این همه بعضیت و معاصی و گرفتاری و خاطر چیه؟ فاصله مردم از روحانی هم خیلی از موارد میان از من میپرسن گرفتاری گرفتاری نرز کن به امامزاده های زنده یعنی به طلب ها مردم به طلبه سلام نمیکنه، طلبه رو سوار نمی کنن. طلبه رو بی اعتناه هستن و تمام بحت بختیشون از همین صاحب جواهر یه کتاب فقی داره غیر از جواهرش که خیلی سخته یعنی خوندنش کار حضرت ناینیه نا اون فقط می فهمه. خیلی خیلی سخت نوشته بعد علتش از ایشون پرسیدن چرا سخت نوشتید فرموده به خاطر اینکه اولا مردم نگم ما خودمون بلدی. بریم به سالهای فارسی بگیریم بخونیم و چرا از دوحانی بپرسیم ثانیان خود اهل علم یعنی مراجع کنن به اهل علم ثانیان اهل علم من وقت بذارم اینا رو بفهمن نگم ما همه سیزو گرفتیم کتاب ها رسا سخت می نوشتن برای اینکه مهوریت آخوند از بین نره الان تمام مشکلات مردم همینه مهوریت آخوند از بین رفت که میخونه خونه جمع میشن شن آخوند والای منبر می پا میشن شن به, به طرف جهن والا حیعتی باشن هرچی باشن در گمراهی مطلبه مدار کجا و آخوند کجا منده که همش سرقات حدیث می و روایت می خونن معتبر صحیحه متن می خونن. هر چیزی دور از ما گرفتن وقت ما دنبال مال چی میگردید هیچ قبلا اینطور نبود. قبلا من یادم روحانی سر جاده پیاده میشد به مسجدی که این ور کوچه بود شاید 200 300 متر میشد همه پا میشدن تا روحانی بیاد بری مسجد بپسینه تو توکوزی کسی حق نداشت روحانی رفت بشه و نشسته باشه. خیلی هم دور از مال 20 سال هم لذا اگه بناس با این فکر ما فکر بخونیم احتیاط اصلا جایز نیست همون چیزی که شیخ مفید میگه و معاصرینش میگفتن و قدما باید میدن ما احتیاط رو باب کنیم بگرد اما ما تبدیل نمیکنم ما هم احتیاط میکنیم. حتی معاصرین که به جواز احتیاط در اصل مسئله گفتم باید برگرده به مرجع تقریبیش مرجعیت باید قدرت بگیره توان بگیره که دین ما قول محور یک نفر بچرخه اگر اینطوری باشه دیگه فایده نداره حالا علا حالا این دیگه اونم یه مشکلی دیگه و میشه میشه از تن مبدود رو زیداش کرد پراکندهی درست نشه تقلید به قدما باید نیستند کتاباش نمی راضی کنیم من شب 60 تا دارتا کتاب از قدما دیدم احتیاط رو باید نیستن یا تقلید یا اشتماد کدوم <تصفيق> واقع کدومه؟ غیر از وسایل شیعه واقعی دادیم؟ واقع همینه واقعی که شما هرچی مولا میگه کس رو ایازه و امر معمور امیره ما کسه مهمه که شما تبعیت کنید سلطان محمود نلی <تصفيق> یک دولر گرامبه های رو داد به گفت اینو بشکن گفتن نه اینو برای چی بشکن اینو قیمت داره کل سلطنت ما مربوط به اینه وزرا هیچ کدام نشکردن گفتن حیفه داد به ایازش یعنی خادمش تا گرفت و گرفت و شکست گفتن چرا شکستی؟ گفت شما مولا رو شکستی من یه دونی رو شکستم لذا حاض سبزواری میگه کسرالایاضه للفریدة شتهر و امر مأمور عمیر ما سر احتیاط شکستن مر تقلید شکستن در واقع همه وسایل شیه است یعن خیال کنه به اینکه غیر از وسائل شیعه ما چیز داریم واقعی داریم اینها همش خیالاته. <تصفح> لذا کتاب که بیشتر از مساید مطلب میارن اونها روایاتش خیلیش ضعیف. عمدهترینش ترینش همین مسایده بناس ما متعبد به همین باشیم بناس حول محور امامت باشه همش در میارن یه چیز شما بیا که در میارن مطلبه اخباری ها حرفشون خیلی بد نیست که اونا هر که پرگردیم دور محور امامه الان این وهابیت این هم مشکلات به خاطر چی درست شد به خاطر همین یعنی فاصله داریم بگیریم ما شما دیگه سال بعد نگاه کن تقلید رو میذارن کنار اجتهادم که از این رفته بود تیگه ایچی دیگر کسی بر خودش همون جامعه اروپا میشه دیگه اونا هم هم مرجعیت و زعامد اینا خیلی اهمیت داره در دین امامت مهمه. جریانی این در سفین به این روز افتاد یا در جمد بخواضیه امامت رو خرابش کرد؟ و همیشه دشمنان سه تا مرحله رو اینها طی میکنن که در روایات هم خیلی بهش اشاره شده یکی حرمت زدایی حرمت زدایی میکنن ما مهم نیست حرمت زدایی بعد حرمت شکنی بعد حرمت ستیزی کربلا نمود حرمت ستیزی اگه بنا باشه ما فرهنگ آشورایی رو احیا کنیم همه چیز باید حول محور امامت باشه و مرجعیت و آمت دینی مثل تحریم تنب اینا با هیچ مقیاس اروپایی قابل اجرا نیست ولی اگر زیامت باشه میشه خیلی مهمه اینا رو نادیده نگیریم قدما قائل بودن قدما حول محور شیخ مفید بودن از از رمز هم همینه اگه این نباشی که احنا به درد بودن ازا فرمایش ملکی تبریزی رو در المراقبات پیدا کنید که موعظه و امامت رو از مختصات احل علم میدونه طلبا هستن باید دنبال همین باشه چرا طلب ها به این روز افتادن به پیسی خوردن گذدن بیان ساره به خاطر اینکه که دنبال این دو چیز نیستن دنبال امامت نیستن با اینکه که آیه قرآن میگه که ما رو امامی برای متقین قرار بدن امامت یکی از خاصه های انسان باید باشه ما تنظر میکنیم تن می‌کنیم میکنیم ها و درک ها به نامیه پیدا میکنه ما هم رو ترجم میکنم بیریم ذهن ها نباید این طور باشه ذهن باید یه طوری باشه که تمام حکومت های جبار از شیستت بتستن یعنی وحشت کنن تلاش باید اینطور باشه که همه وحشت کنن ازش نه یه طوری باشیم که نه بودن خیلی بهتر برا داشتن دیگه لازم نیست ما خیلی خرج کنیم اینا ندارم خراب میکنم دیگه. الان چقدر برای پول به تبلیغ میریم خودمون بیننا و بیننا برای پول میریم تبلیغ سمره این ندار این امامت نمیگن کدوم پیغمبر اینطور بوده بگیم نه نوا و این نباشه روزگار نمیچرخ زندگی نمیچرخه این هم از تبنیسات شیطان خیلی چیزا فرق کرده ادامه دادیم. بنابراین مقانی در بین قدما های قیشه ای داشته که <تصفح> در بعضی از اون از بین رفته مسئله مشکل قصد نیست که بگیم قصد وش اینطوری میشه و از می نه بالاتر از قصد وشه تعبدیات باید از طریق شرعی برسه و تعبدیات رو میشه تفسیر کرد به کل مایون سبایی مولا که مشهور میگن یا قطل ماهوبه منصوب اونه در مولا که یه تفسیر دومیه حالا شما بین این دوتا تفسیر یکش اتخاص کنید اجباری هم منش نیست ولی مهم اینه که شما مبنیتون چیه احتیاط رو جایز میدونید یا جایز نمیدونید و استیحاش نکنیم از نظریه میزای قمری که قائل به بطلان عمل مفتاد بگید باید تبلید کنم همون حرف که شیخ مفید داره و شیخ تولس و مقاصرین هم که قاعده به جواز احتیاطن در اصل مسئله احتیاط میگن تبدیل بنابرای احتیاط هم برگشتش به تبدیل منتها خیلی از عوام الناس که احتیاط رو بلد نیستن احتیاط به چیه؟ میگن اگه فقها اختلاف دارن به احوت احوال اونها عقص بشه احوتش قدومه چقدر وقت بذارن یه احوت پیدا که راحت لذا اگه تصحیلی هم باشه مجوز تقلید نه مجوز احتیاط ولی خب بیشتر از این ها نیاز به بحث داره شالوده بحث همین بود که در تفسیل تأبدیات اختلافه بعد قدما با معاصرین و متأخرین اختلاف دارند. بین این که مقدمه یه عدم وجوب احتیاطه یا عدم جواز احتیاط اون هم اختلاف دارن خلاصه با این هم اختلاف ما چی گناه ما چیه به ای هم به یعنی طایفه طلبه به چی کشته میشه به اختلافات اینطوری مقدمات انسدادی که هیچ اساس نداره برداشت ما از مفاهیم کلمات قومه ما به چه داریم اختلاف نگه که این دست درست خودمون نمیدونیم که آیا مستفاد از کلمات و مفهوم از کلمات مقدمه سوم این عدم حجوب احتیاطی عدم جواز احتیاطه خودمون نمیدونیم بعد این رو ادامه بدیم دیگران هم که بعد از ما میان همینطور از بنار رو از بین احکام دین و اهداف دین فرقه فوقه های مقدار باید بالاتر از اون چیزی که هست فکر کنم فقه ما در حد نحر براغه باید باشه در حد خطبه از از زهره باید باشه نه یک فکر خیلی خیلی خیلی تنظر یافته که بیام دین به چیزایی بدیم که اصلا ربطی به دین ندارم و ایلا این ها که بر سر نیزها ها اهداف مهم. چرا شیخ مفید در خیلی از کتاباش با به بطلان عمل محتاطه نگه احتیاط بده نه این فاصله گرفتن از خوبه و دشمن هم همینو میخواد دیگه یعنی تمام منافقین و کفار همینو میخوان. که شما از علما فاصله بگیر و جهنم انسان همینه دیگه لازم نیست جهنم برن هستن دیگه نه حضا میگن این افراد رو خدا چطور میخواد حساب بکنه کنه حسابشون رسیده شده تمام دیگه اونا که مخالف با روحانیت اینا تو جهنم دارن زندگی میکنن دیگه رفتن نداره به خاطر اون دنیا مذهر این دنیا تجسم آفتشه یک شبه که انسان جهنمی نمیشه در طول عمر میشه دشمن همینو میخواد و ما این راه رو منصدقش کنیم بهتر ولو به مساله باشه احتیاط درکار نیست شخصی ها باشه یا مقلد باشه از شخصی که مجتهد مطلبه که بهتر نظام میگیره یعنی جامعه اسلامی بهتر نظام میگیره میبینی گروهی از یک نفر هر شنوی دارن. وعل اگر آنطور نباشه میش جامعه غرف زده که از هیچ اهد حرف شنوی و این روایاتش رو در کتاب وسایل شیعه باب یازده اواب صفات قاضی بخونید بیشتر از نا روایاتش و خطبه حضرت زهرا رو هم بخونید نهجالبلاغه م خیلی یک تسلیف نهج البلاغه از مال لبی بیزون که بهتریش بهترین شاهکاریهای شون کتاب‌های های خوبی داره یک کتابش هم تصمیف نحضر بلا در رابطه با امامت می چقدر فقرات رو در کنار هم جمع کرده خیلی خیلی بهتر از اون چیزی که تصور بشه اصلی امامت، اون خاطر روایات داره که بنیه الاسلام علاق همس و بهترینش ولایت و امامت که باید به احتیاط میشن این فاصله دفت رفتی بیشتر میشه از استیحاش نشه از نظریه یه ریزای قمی که قائل به بطلان عمل شخص محتاد خب اولا تأفدی و توسطلی در اون جزوهای که تکسیر شد صفحه سبحی... چهار تا تفسیر داره تحب و توسطی چهار تا تفسیر داره و تفسیرات شد خوندید یه روز وقت نشد ما اینا رو بخونیم تحب خودی یاد گفتیم بیر از عباداته صفحه نه از اون با باعث مجموعمالی که تاکسیر شده مال سال‌های قبل صفحه نو داره که یعنی پشت صفحه نه عت توسطرس یا دهها اربر ماه چه معنا داره مایت خ به فعل غیر مای از ختو به غیر اختیاری مای از ختو به فعل محرم، مالا یال سقوط و علاقسته بود. اینا هست ولی تعبدیات در مقابل توسطیات یک تفسیری از مشهور داره اونها میگن تعبدیات کل و مایون سبایی در نورا ولی یون باید باشه یا منصوب باشه این اختلاف در کلماتشون هست قصد و بعد شرط در نقام انتصاله؟ شاید در مبام انتصال اونم مخصوص عبادات ما بحثمون در تعبدیات که حتی غیر عبادات رو میگیره مثل طلاق مثل نکام بله طلاق تعبودیه چرا نیست و الا باز زنا فرم نداره کی؟ <تصفيق> آخه زباییاتی که میاد خیلی جد مهاید حکام و رو داره میگه درستی نداره همین دو تا تفسیر که در کلماتشون هست و میشه استفاده کرد حتی دومی دو رو از کلمات میشه استفاده کرد این نزار به ما نداره ولی حالا مشهور در کلمات همون اولیه کل ما یون سبایل المولا فقط فکر کنی چه خیری از به هم برسه مهمه اینه که نظر خودتون چی میشه اینطور نیست بیان بگیم آقا احتیاط هست کار خوبیه احتیاط تقلیدی میخوای چیکار وقت تقلید میگن آقا موضوعیت نداره چرا نداره اساس دین ازم تقلیده موضوعیت نداره یه چی این روایات در رابطه با عوان در رابطه با عوان یعنی اینها میگه سوریه نمیشین حرفا رو بزن فوقه ها تالی کلو نه تبعیت از اینها لازمه واجبه تقلیل رو نمیشه بذاریم که احتیاط تزویز بشه و لقد آوج اقلبی موت و عوان تعبیر امان با علیه در رابطه با عوان به جال کشی بخونید سایر فقه ها هم یا اون علی آل رسول عظیم در رابطه باشیخ مفید دبینم جنده 54 از بهار صفحه 25 صفحه شو میدونم می و دیگه جنده شو و تعبیرات دیگه بنابراین فقه ها موضوعیت دارن تقلید هم موضوعیت داره و الا یعنزم تمام محضوراتی که در طول این 1400 سال پیش اومد. کدوم با روابط مسائل هر از همینه امتصال همینه هم که باید نداره نداره ما اون خواهد مسلحه بهتر از مسلحه که مشهور امامیه میده حالا میرسید در مسلحه سلوکیه خیلی خوبیه شاکار شیخنسالیه و بهتر حالا مراجعه کنید دیگه بهتر تفسیر نمیشه کلمات نهزید بلاقه و خطبه حضرت و زهرات اسمش که یادم بیاد اینو یکی از خوقه هم شرح کرده جامعه مدرسین هم چاپ کرده همون با اون شرح قابل فهمه با همون شرح قابل فهمه و شاید یادم بیاد به همونگیرد من قبلا داشتم الان ندارم با اون عبادیات چیزایی که قصد غربت داره شما هم پسیدارو بذارید اسکم بشه بعدا روز بعد کنی Gracias por ver el